مرد را شناخت، خودش بود همان که دیشب با هم زیر سقف شبستان خوابیده بودند و او یک ریز خور رو پف کرده بود مرد بدون توجه به او راه شهر را پیش گرفت اسماعیل خودش را به مرد رساند و سلام داد مرد بیان که نگاهش کند، جواب داد چند لحظه به سکوت گذشت فقط بوغلمون به پشت سر نگاه می کرد و مثل آب قلیان قلقل می کرد برای اینکه خیالش راحت شود پرسید میرین شهر دیگه؟ پس چی که میرم شهر؟ مگه نمیبینی؟ منم میخوام برم شهر، منتظر همراه بودم پس خدا برات رسونده، پشت سرم بیا اسمایل که شانه به شانه او میرفت، ناچار یک قدم عقب ماند تا پشت سرش باشد مرد برخلاف حیبت شبانهش چاق نبود، بلکه لاغر هم بود اما از بس لباس روی هم پوشیده بود، آنطور دیده میشد عبوس و طولب به نظر می رسید. با آن شخصیت ترسو و لرزان دیشبش فرق داشت. داشتند از ده فاصله می گرفتند، اما هنوز آنطور که باید مثل دو همسفر با هم اختلاط نکرده بودند. ظاهراً به نظر هم نمی که مرد بخواهد قفل سکوتش را بشکند و به زبان بیاید. باز هم اسماعیل پا پیش گذاشت و شانه به شانه او قرار گرفت و پرسید دیشب راحت بزارن؟ من همیشه راحت میخوابم حتی روی سنگ اما بعضیا نمیذارن بعضی باز هم سکوت کرد با وجود سنگینی بوغلمون که گاهی مجبور میشد آن را از بغل چپ به بغل راست یا برعکس عکس به جا کند تند و شاداب راه میرفت که از ظاهر و سنش بعید مینمود به درخچه آلوچه رسیدند جای بریدگی شاخه از دور دیده میشد همینطور جای پای گرگ و خودش مثل مهر روی برف حک بود. به اطراف نگاه کرد. سبلان تا دور دست ها برف بود. دیروز که داشتم میومدم اومدم گرگ دنبالم راه افتاد. گرگ؟ آره تا نزدیک ده با هم اومد میخواست حمله کنه. حمله هم کرد؟ حمله کرد اما منم جلوش باعستادم. خوب کاری کردی. آدم باید جلوی راهزن و گرگ در بیاد. اگه در نیاد یکی مال آدم و میگیره یکی هم جونشو. هیچ فرقی هم با هم نمیکنن. جون و مال؟ آره پس چی اگه مال نداشته باشی جون نداری جون هم که نداشته باشی هیچی نداری اینطوریه دیگه؟ به راهشان ادامه دادند دیروز یخ زمین باز شده بود و پادران فرو میرفت اما امروز هنوز سفت بود حتی جای پای دیروزش هم دیده میشد تنها موجود در حال حرکت آن صحرا آنها بودند جنبنده ی دیگری به چشم نمیخورد بوغلمون ناگهان سر و صدا کرد شنیدی امریکایی یا گرگ آوردن اینجا ول کردن؟ شنیدن که شنیدم اما ندیدم خودمون اونقدر گرگ داریم که گورگای آمریکایی پیش اونا بررن بی بود سخت صحبت می کرد شهر می بفروشیش؟ آره از ده خریدی؟ مرد با اخ نگاهش کرد. پس نه دزدیدم خریدم دیگه مگه نمی بینی؟ و بوغلمون را نشان داد حیوان دیگر مثل اول صد سرخ نبود. داشت تجمورده میشد. حتما قیمت ده با شهر فرق میکنه. لابد شهر گران میخرن. نپس میخواستی قیمتشون یکی باشه؟ مگه من ده 10 من پول بدم، بو به این بزرگی رو از تو ده بخرم، بعد ببرم همون قیمت تو شهر بفروشم. عقلم کم شده مگه هان؟ نه خب این که نمیشه. منظورم همین نبود. تقریبا میدونستان. میدونستی و از چرا پرسیدی؟ گفتم با هم حرف بزنیم اینطوری راه کوتاهتر میشه زودتر میرسیم. نه خیر. نه راه کوتاه میشه نه ما زودتر میرسیم. راه همون راهه، وقتم هم همون. ما سر خودمون میتونیم کلاه بذاریم اما سر راه که نمیشه کلاه گذاشت. باورت نمیشه ولی من دیدم سر ساعت کلاه بذارم. مرد باز هم برگشت و با قذب نگاهش کرد. هان سر ساعت من دیدم چطور کلاه میذارن. چطور؟ صبا؟ وقتی زنگ میزنه و آدم و از خواب شیرین بیدار میکنه برای اینکه دیگه صدای زنگشو نشنبن کلاه میزنن روش صداشو خفه میکنن مرد از کنار قبقب آویزان بوغلمون به دقت نگاهش کرد و گفت ببینم تو فکر میکنی من دیوونم؟ نه من چرا باید فکر کنم خدایی نکرده دیوونه ای؟ میدونی چیه؟ نه اما من فکر میکنم تو دیوونه ای من؟ بله همین تو؟ اگه دیوونه نبودی اینقدر حرف نمیزدی ساکت باش دیگه تا مشکین شهر با هم حرف نزدند در حال قدم زدن بود که بوی کباب اشتهایش را تحریک کرد دود از یک مغازه غصابی بلند بود شقه سرخ و خوش رنگ گوشت از قناره آویزان بود. قصاب همانجا می برید و به سیخ می کشید و می روی منقل و آتش به قاعده شعله می کشید. قطره چربی چکه چکه می کشید روی آتش و دود سفید رنگی از آن بلند می شد که عطر مطبوعی داشت. آنقدر که آب دهانش را جاری می کرد. چند نفر انتهای مغازه پشت میز نشسته بودند و کباب سیخ شده را درسته می لای لای آن را چندتا زدند و با زحمت و لذت و با انگشت فرو می‌بردند توی دهانشان و بعد می جویدند. حتی اگر میخواست هم نمیتوانست از میان آن دود سفید و بوی اقواگر بگذرد و برود زانوهایش لرزید و دلش مالش رفت مثل خوابگردها داخل شد گرم بود و پر از بوهای اشتها آور رفت و انتهای مغازه پشت میز نشست توی سینی برایش نان و پیاز آوردند تا کباب حاضر شود، پرهای پیاز را گذاشت لای نان و شروع به خوردن کرد وقتی سیخهای کباب را آوردند و گذاشتند توی سینی، نصف نان را خورده بود از کباب روغم می روی نان و لکه های قرمز میگذاشت. کمی نمک پاشید، مشغول خوردن شد نان و کباب زیر دندانهایش خورد و نرم می و مزه آن در جانش مینشست. برایش نوشابه آوردند گاهی برای تغییر زارغه یکی دو قلوب از آن سر میکشید و باز سق میزد به نان و کباب سیر شد اول سینی خالی پر از خورد نان و بعد سیخها را به آن طرف میز هل داد و خودش هم راست شد و کمی عقب نشست احساس میکرد سوی چشمهایش بیشتر شده و اطراف را بهتر میبیند و و صداها را واضح تر لم داد به پشتی چوبی صندلی کهنه و نگاه سیر و خمارش را دوخت به پیادهها. بیشتر مردها کلاه لبدار بر سر داشتن و تعداد گاری و دو توی خیابان چشمگیر بود. اینها تازه به چشمش میآمد چند بار آرخ زد. بوی کباب و گاز نوشاب از بالا آمد. یادش افتاد که چند روز بود غذای درست و حسابی نخورده بود. با کیک و کلوچه و شکلات خودش را سیر کرده بود. اما حالا واقعا سیر شده بود. قصاب نلبکی را محکم زد روی میز، چند مگس چاق که چربوچیلی میز را مک میزدند از ترس پریدند چرت او هم پاره شد و پرید وقتی چشم باز کرد دید چای توی استکان لب پر و کمی از آن سرریس شده و ریخته توی نلبکی هبه قند کجوکولهی را از قندان چرکتاب برداشت و با همان اندک چای ریخته شده توی نلبکی خیساند و گذاشت زبانش زبانشو مک زد قند خیس خورد رفت و شیرینیش روی زبانش پخش شد خواست نلبکی را بردارد و سر بکشد اما استکان داغ بود و چای لبهایش را سوزاند. آن را برگردان در نلبکی ناگزیر به تماشای اطراف پرداخت. گاهگداری مشتری وارد مغازه می و درخواست گوشت میکرد. قصاب چاقویش را تیز میکرد و سراغ راسته میرفت. با مهارت کمی به بالا و پایین آن نگاه میکرد و بعد تیغه چاقو را جای مورد نظر میگذاشت و میکشید پایین. مقداری گوشت از راست جدا می کرد، آن را می کف ترازو، دوباره دنبال نقطه مناسب می گشت. در این مدت چشم مشتری هم همراه تیغه چاقو روی راسته می لقزید. چای را که خورد، مدتی خواب از سرش پرید، اما خیلی زود پلک هایش دوباره سنگین شد و چشم هایش تار دید. مگز اطراف صورتش وزوز وز می کردند. از فرط خواب و حال دور کردن آنها را نداشت. انتهای مغازه سکویی بود که بسته رخت خواب آنجا بخچه پیچ بود وقتی قصاب نزدیکش شد و پرسید می خوری؟ استکان را به طرفش هل داد فعلا نه خواست استکان را بردارد دست دراز کرد و نلبکی را چسبید میتونم اونجا یه چرت بزنم خیلی خوابم میاد خواب اونم حالا سرهنگا هم تا این وقت نمی‌خوابن چی کار کنم دست خودم نیست ببین چشم باز نمیشن سرش را بالا گرفته بود تا قصاب خوب ببیند مسافرم هیچ جا رو هم بلد نیستم استکان را برداشت و در حال رفتن گفت خیلی خوب برو دراز بکش خوشحال شد کفش‌هایش را درآورد و از روی سکو رفت تا مغازه دیوار آنجا تبله کرده بود و بوی رطوبت میداد بخچه را باز کرد و بالشی زیر سرش گذاشت و روی جاجیم دراز کشید و لحاف را انداخت رویش سخف پر از تاره انکبوت و لاکره میست و پروانه بود. در مغازه که باز و بسته می تورها می و سیدهای زنده دست و پا میزدند. خوابش برد. با صدای معزن بیدار شد. حالا بوی قلیان و سیگار همراه با بوی کباب پیچیده بود توی مغازه. کرخ و سنگین بلند شد. بالش و لاحاف را گذاشت توی بخچه و از سکو پایین رفت. پول صبحانه را حساب کرد. پرسید. برای ناهار هستی؟ هستم اما اشتهاه ندارم. پس به سلامت وقتی خواست بیرون برود پرسید ریز چطوری باید برم؟ چطوری باید بری؟ هیچی میری ترمینال اول بیلیت میگیری بعد سوار اتوبوس میشی به تبریز که رسیدی میای پایین اما باید به جنبی دیر برسی اتوبوس تبریز رفته از مغازه بیرون آمد آسمان صاف بود. گرمای خورشید اواخر اسفند را روی شانه‌اش احساس کرد با عجله به طرف ترمینال دوید وقتی رسید که اتوبوس رفته بود به دفتر ترمینال سر کشید اما دیگر اتوبوسی به تبریز نمیرفت بیرون آمد حالا دیگر مقصد و هدفی نداشت برای رفتن به تبریز باید آن نیمروز را به شب میرساند و شب را هم به صبح وصله میزد در تنها خیابان اصلی که غرب و شرق شهر را به هم وصل می کرد، سرگردان ماند. کنار جوی ایستاد و با آن چشم دوخت. آب گلالو توی جوی جاری بود. آب با خود همه چیز می آورد. حلب خالی روغن، ظروف پلاستیکی، عروسک بی دست و پا. کمی بعد سر و کله بچه گروهی هم پیدا شد. آب داشت او را با خود می برد. ساکش را زمین گذاشت. کنار جوی زانو زد و دست دراز کرد و گردن بچه گربه را گرفت و از آب بیرون کشید. سرما زیر پوستش نفوذ کرد. بچه گربه را توی پیاده را جلوی آفتاب گذاشت. آب از پشم و پوست حیوان جاری شد. کوچک بود و از سرما می لرزید. منتظر ماند از جا بلند شود، خودش را بتکاند و راهش را بکشد و برود. بلند نشد. رهگذران گاهی نگاهش می کردند. کمی بعد بچه گربه تلاش کرد چهار دست و پا بیستد، اما تنها میتوانست روی دو دست بلند شود. پاهایش زمین گیر بودند، دنبالش نمی آمدند. کنار حیوان روی پا نشست. با دقت نگاه کرد. هر دو پای عقبی گربه شکسته بودند و تاب بر می داشتند. برای همین تنها با دو دست خود را جلو می کشید و ردی از آب روی آسفالت پیاده رو بر جای می گذاشت. سرش داغ شد، احتمال داد پاهای گربه زیر چرخ ماشین رفته و شکسته باشد. حیوان خسته میشد، اما دست از تلاش بر نمی داشت. او هم همراه گربه به جلو می رفت. امید داشت یک دفعه حیوان خوب بشود و روی چهار دست و پا بیستد و مثل همه گربه های دنیا بدود. اما چنین اتفاقی نمی افتاد. گربه زمین گیر شده بود، به زحمت جلو می رفت. کمی بعد نیروی خود را از دست میداد و می ایستاد و برمیگشت پاهای شکسته اش را میلیسید و دوباره سینه خیز می رفت. درمانده شد. دلش نمی آمد گربه را به حال خود رها بکند و برود. چند بار به نظرش آمد حیوان را بگذارد توی ساکش و را همراه خود ببرد. اما کجا؟ مگر خودش جا و مکان داشت که گربه را هم ببرد؟ با این حال بلندش کرد و روی دستهایش گرفت و به راه افتاد. مردم با تعجب نگاهش می کردند. بعضی هم پوسخن می زدند و از کنارش می گذشتند. گربه اول تلاش می کرد خودش را رها کند. اما وقتی ناامید شد خود را به دست او سپرد آرام گرفت. در مسیرش باز هم به مغازه قصابی رسید. باز هم دود کباب از آن بیرون می زد. داخل شد و سلام داد. قصاب نگاهش کرد. وقتی بچه گربه را به آن شکل روی دست های او دید با تعجب گفت اینو از کجا آوردی؟ از جوب گرفتمش، پاهاش شکسته، میشه بهش آشغال گوش بدی؟ آشغال گوش که اون خوب نمیکنه. اما زنده میمونه، بقیهش هم خدا بزرگه. خیلی خوب، بذار این پشت در. با شاقوی براق و تیزش محل مورد نظرش را نشان داد. اسماعیل بچه گربه را آهسته آنجا گذاشت و آرام دست به سرش کشید. خداحافظی کرد و از مغازه بیرون رفت بی هدف راه افتاد و مشغول تماشای ره شد بعضی از سر و شکلشان معلوم بود که کارمندند و شلوار پوشیده و موهایشان را مرتب شانه زده بودند چند نفر چند نفر کنار هم قدم میزدند و صحبت میکردند. به نظر می رسید که آن مردان دولتی همین است که بعد از زهرها از خانه بیرون بیایند و همکاران خود را ملاقات کنند از پیاده رو تنها خیابان شهر را بالا رفت گاهی می و برای ماشین هایی که به سمت تبریز می دست بلند می کرد. اما هیچ کدام نمی ایستاد از بلندگوی یکی از مسجدها صدای قرآن پخش شد به آن طرف رفت در مسجد باز بود و چند نفر سیاه پوش با حالتی مقموم و اندونه کناران ایستاده بودند داخل حیات شد به طرف وضوخانه رفت دستهایش را با صابونی که آنجا بود تمیز شست. وضو گرفت و داخل شبستان شد. قاری قرآن میخواند. قاب عکس متوفا را که جوان خوش‌سیمایی بود، کنار سفره خرما و حلوا گذاشته بودند. به گوشه خلوتی رفت و به نماز ایستاد. برنامههایش به هم ریخته بود. نمازهایش را نمیتوانست به وقتش بخواند. تا آنجا که یادش بود، چند تایی را هم جا انداخته و نخوانده بود. با خیال راحت نماز خواند خسته که شد مدتی همچنان رو به قبل نشست و به کاشی هایی که نقش های اسلیمی سفیدی داشتند چشم دوخت. نگاهش به نقطه بالای محراب میخکوب شد. مدتی به آنجا خیره ماند احساس کرد از آن نقطه شکوفه های سفید میریزد روی کاشی ها و بچه گربه با دست و پاهای سالم با شکوفه ها بازی می کند. چند بار پلک را روی هم فشرد. نه از شکوفه خبری بود و نه از بچه گربه شبستان چند بار پر و خالی شد روستاییها هم در مجلس بودند با کلاهای پشمی و بالاپوشهای زخیم و چهره های آفتاب سوخته در این میان حضور مددایی پشت میکروفون توجهش را جلب کرد قد بلند بود و نسبتا لاغر با چهرهای خشن، ابروهای پرپشت به هم پیوسته، گونه های برجسته سویلی پهن و سیاه و چشم های نافذ. به نظر آدم خطرناکی می‌آمد، اما حرفهایش ملایم بود. من نمدده هم و نمددهی بلدم، فقط بلدم برای آقام اولفذ گریه کنم و اشک بریزم. امروزم نیومدم شما را به گریه بندازم، اومدم خودم گریه کنم. اینجا بغزش گرفت و آرام زمزمه کرد. مردم ساکت شده بودند و با کنج کافی نگاهش می‌کردند. مرد کم کم مجلس را به دست گرفت، صدای رسایی داشت، همانطور طور که گفته بود، چشمه اشکش جوشان بود، خودش بیش از همه گریه می کرد، دانه های عشق از روی گونه های آفتاب سوخته و برگستهش جاری می شد و لابلای ریش کم پشت صورتش فرو می رفت. از اول فضل می و ایستادگیش در مقابل اقوای عشقی و معرفتش به سید به نظرش مجلس این مداح عجیب زود تمام شد. شاید همچون نفسش گرم و گیرا بود این طور به نظرش آمد. آخر هم نوبت روحانی بود که بالای منبر برود و طبق رسم مجلس ترحیم درباره دنیا و آخرت صحبت کند. نماز مغرب و عشا را هم در همانجا به جماعت خواند و همراه مردم از مسجد بیرون رفت. در حیات مسجد از یک نفر شنید که متوفا را گرگ دریده. به فکر رفت یاد گرگ آدمخار افتاد هوای بیرون سرد بود برای همین کسی نمی ایستاد تا او بیشتر بشنود مردم با عجله راه خانه‌ها و روستاهایشان را پیش می‌گرفتند تنها او ایستاده بود و سرگردان به اطراف نگاه می‌کرد از بید بلندی که روبروی مسجد بود گاهی صدای خوابالود گنجشکی شنیده می‌شد کلاغ‌های شهر پیدایشان نبود آنها هم لابد روی شاخه چنار یا افرای بلندی کنار هم کس کرده بودند. سبلان سر در میان ابرهای تیره فرو برده بود. نور زرد و کمرنگی از چراغ برخهای بالای تیرکهای چوبی حاشیه خیابان به پیاده روها میتابید. جز بقالی ها مغازه های دیگر بسته شده بود. لحظه به لحظه دلش میگرفت. مشکین شهر غروب غم انگیزی داشت. مخصوصا برای او که غریب بود بی هدف در پیاده رو راه می رفت. صدای گام را میشنید. می شنید. نمی توانست تصمیم بگیرد مسافر ها کارت شناسایی می خواستند و او نداشت نمی خواست شناسایی بشود می ماند قهوه خانه ها و مساجد یا احتمالا خانه ای که مهمانش باشد در انتهای شهر در جایی که آن سرش بیابان شروع می کنار چند گاراژ و تعمیرگاه چشمش به قهوه ای افتاد که نور آن قسمتی از رو و جدول شکسته ی جوی بزرگ و پر از روغن ماشین و گازویل را روشن کرده بود. وقتی مقابل آن رسید، از پشت شیشه های تار و عرق کرده قهوخانه، قهوه خانه، ای را دید که سرگرم چای و قلیان و گپ زدن بودند. داخل شد. مثل همیشه بوی چای و دود قلیان و سیگار در هوا موج میزد. با این حال آنجا روشن بود و گرم نفس آدمها برایش امنیت میآورد پشت میزی که پایههایش لغ میزد نشست و ساکش را گذاشت پیش پایش وقتی شاگرد قهوه‌چی از دور پرسید چه میخواهد او سفارش دیزی داد چند دقیقه بعد برایش آورد بخار ملایمی از دهانهٔ آن بلند می‌شد که اشتها آور بود شامش را بی اشتها خورد نمیدانست چه بکند بلا تکلیف بود چند بار خواست از قهوهچی بپرسد آیا میتواند شب را آنجا بماند اما این کار را نکرد از شهر خسته شده بود احساس میکرد قلبش فشرده می شود و سنگینی سخف خانه ها روی شانههایش مینشیند. بعد از شام یک استکان چای خورد و ساکش را برداشت و رفت پیش قهوهچی. پول شام و چایش را حساب کرد و از قهوه خانه بیرون آمد باد سرد روی گونه هایش پنجه کشید و سوز آن خزید زیر پوستش ترسید خواست دوباره برگردد قهوه خانه و تا آفتاب فردا از آن بیرون نیاید اما برنگشت راهش را کشید به طرف بیرون شهر باد از بیابان می آمد. چالش میزد به سینه دیوارها و میپیچید به سیم‌های برق و زوزه میکشید در دل شب. پیاده رو خلوت بود. نه کسی می‌آمد و نه کسی می‌رفت. سایه‌ای روی آسفالت نمی‌افتاد. گردنش را میان یقه نیم‌تنهش فرو برد و کلاهش را کشید روی سرش. همچنان مغازه‌های بسته و خانه‌های تاریک را پشت سر می‌گذاشت. می‌خواست یک جا نماند. وقت بگذرد شب بگذرد آسمان سفید شود، خورشید بدمد، آفتاب بتاود گرمش کند. از حیات خانه های حاشیه شهر صدای پارس سگ می‌آمد گاهگوداری ماشین باربری سنگینی شهر را پشت سر میگذاشت و رو به بیابان میرفت. آنگاه صدایش حوزنگگیز میشد و دل به رفتن نمیداد. بعد از آن سکوتی ترسناک که از جنس نیستی و تاریکی بود بر همه جا حاکم میشد